سفر اول، فروردین، یزد و نائین این قدر عکس نگیر. پیش از تو عکسهایی به مراتب بهتر از اینها که تو میگیری از این جاها گرفتهاند اما با حضور فری برز و فریبا. نصر الله کسرایان هم همچو عکسی ندارد. عکس را دوست ندارم. عکس انسان را اسیر خاطره می اسارت شیرین شیری نیست. حال را اگر به قدر کافی شیرین کنی احتیاجی به اسارت نیست. خدای من اینها چگونه دانستند که خانه های باید به رنگ کویر باشد. پنجره ها به رنگ آب و روسریهای زنان باخچه گل و قالیچهها ها های هزار رنگ. اینها چطور توانستند ترکیب بندی های العاده دلنشین را کشف کنند. تناسبات آرام بخش را رنگ بندی های این گونه ماندگار را اینها مکمل ها و متضاد ها را چگونه یافتند وقتی انگیزه عشق باشد هدف دوام بخشیدن محصول همیشه عمیق و زیباست سفر دوم اردی بهشت به شمال عاشق میداند که در سفر روح چگونه به لطافتی بلورین دست می مییابد عشق انسان را سبکبال بال می کند. دست باد برگی سوان تو یادت هست اما آن وقت ها تو بچه بودی حال دیگر ممکن نیست جنگل، دریا، کباب پختن از پی هم بی دلیل دویدن و شاید هم به دلائلی ناگفتنی گرد آتش شبانه نشستن تو آذری میخوانی صدای تو خوب است علی هم میخواند. بعد همه قوقا کباب لای نان با سماغ و ریهون و نمک صبح زود بر هنوز تاریک است هرکس کس اهل پیاد رویست بلند شود اهلش هستیم اما نه صبح به این زودی با مرض بیدار خوابیت همه چیز را خراب نکن گیل مرد آنها به تو گیل مرد میگویند. من دوست دارم که بگویند آخر زیر تیغ آفتاب که نمیتوانید توانید چهار ساعت پیاده روی کنید در جنگل تیغ آفتاب هم لذت دارد بخواب من قیام میکنم. کنم خوابالودگان اراده انتخاب ندارند من کاملا بیدارتان می کنم آن وقت اگر نخواستید راه بیفتید کاملا بخوابید عجب خنگ است این شوهر تو اصل ده سال است این را به او میگویم بیست سال سی سال یک روز همیشه به او میگفتم مرگ مسئلهی نیست اگر به درستی زندگی کرده باشیم راه میفتیم دشنامه هایتان را به جان خریدارم چرا که راهتان انداختم وهم جنگل این این اینجا اینجا صداهایی است که در هیچ نقطه دنیا نمی‌شود شنید گوش کن دو فاخته عاشق بر بلندای درختی به گفتگو مشغولند دو قمری هم گوش کن حتی زنجیرها بر عشق می‌افسایند هر علفی دانگی بر سر دوست داشتن زندگی میگذارد، هر بوته بیتیست آشقانه آنها جلو هستند نه عقبند. نه عزیز من ما بسیار آهسته می رویم آنها عمدن بیراه رفتند کور راه را رها کردند تا با خودشان باشند آنها بی تند می روند. باید تصویرهای این چونین بدی را قطع قطره بنوشند نه لا وهم جنگل شب در جنگل نمی شود ماند. شب در حاشیه جنگل میمانیم. چادرمان را همین طرف رودخانه می میزنیم. اجاقی روشن کنید. کولا را زمین بگذارید. زیراندازها را پهن کنید. نزدیک جنگل آتش روشن نکنید. دیگر معجزهای در کار نیست. چای داغ. پسر و عروست دارند میآیند. بهتر است آنها را بفرستیم پی نخود سیاه. خراسان، قائنات، زعفران، عجب اطری این پوستین را بپوش بوی گوسفند میدهد. دهد عیب ندارد تحمل کن چقدر چاق شده ای تبریز پوتین های تازه کوه بخریم آه اصل گویش تو چه دلنشین است اینجا با لحجه آزری حرف نزن آزری حرف بزن یک سفر به جزایر قیونداغی زیبا ترین جزایر جهان یک سفر با کشتی سفری با قایق به آشوراده سفرها را به یاد نیاوریم سفر کنیم با قطار. شیشه را بکش بالا دود در دهلیزها می و به سینه بچه ها صدمه می زند بیا در این امامزاده شم ای روشن کنیم یک سفر نا با دوچرخه چرخه سربالایی ها را بگو یهی پشت بر زین، یهی زین به پشت. خوشبختانه سازمان کوهنوردی به همه جا پیامهای تصویری فرستاده و گروه ما را معرفی کرده. بعضیها که راه بر ما میبندند تلخند و قدری ادب اما ادب و مهربانی ما آنها را نرم میکند میتوان ساخت و تغییر داد، میتوان ویران کرد. آقاجانی رئیس سازمان کوهنوردی عجب آقاست. هنوز هست؟ البته، رفت و برگشت. حکومت خوب خوبان را مردود نمی کند. خانه شدن خوبان حمله قلبی حکومت است. راه، مهمان خانه های کوچک، گفتگوهای مخملین پایان ناپذیر. هر بچه این را میداند که آدمیزاد باید کارش را دوست داشته باشد. اما زندگی، در روزگار ما غالبا آنگونه نیست که کار مطلوب و دوست داشتنی از راه برسد و ما را در آغوش بگیرد این ماییم که باید به هر کاری که گماشته میشویم آن کار را به صورتی دلخواه درآوریم یا در خط رسیدن به کاری دلخواه کار نادلخواه را موقتاً تحمل کنیم و به کمک سایر عناصر زندگی ساز که در اختیار ما هستند فشارهای این نادلخواهی کوتاه مدت را دفع کنیم دیگر معجزه‌ای در کار نیست. قالیچه سلیمانی، انگشتر سلیمانی، قول امربری، سنگ جادویی و کیمیاگر بزرگی وجود ندارد. عصر عصری است که در آن یا باید برای ابد اعلام شکست و ورشکستگی کنیم و تن به نابودی بسپاریم یا خیر سرانه اعلان پیروزی کنیم. حتی قبل از آن که سنگرهای دشمن را به تصرف در باشیم. انسان چیزی جز اراده به اقدام و حرکت نیست. چیزی جز حضور هدف ناب بر پیشانی خانه آرزوهایش، انگیزه های پاک، عشق و ایمان. این مطلقاً بیهوده است که در انتظار آن بنشینیم، که حکومت ها خوشبختی را در دسترس ما بگذارند، این مطلقاً بیهوده است، وقت کشی، گل نی، انتظاری ویران کننده، گیل مرد کوچک اندام آشق شعار، مگر تو نبودی که می گفتی و معلمان اخلاق را دوست نمیدارم. من نبودم، فردریک ویل هم نیچه بود که خود معلم و معزگری بزرگ است، اگر من بودم هم به طبعیت از قدمای عارف من نظرم را اصلاح می کنم. معلمان و معزگران ریایی را دوست نمی دارم. دیگر معجزهی در کار نیست. ما باید سرنوشت را وادار کنیم که سنگر به سنگر در برابر ایمان ما و اهداف ما و برنامه های ما عقب بنشیند و سرانجام، فروتنانه، پرچم سفیدش را به احتزاز دراورد و فریاد برآورد که آری من اینن همانم که شما به آن رسیده اید. قهرمان بودن و غیر از همگان بودن بخش بسیار ناچیزی از انسان بودن است از این گذشته قهرمانان و نامداران نیز از طریق روزمرگی های هدفمند است که به نامداری و قهرمانی میرسند روزی غلام تختی محبوب ترین قهرمان میهن ما به من گفت به خودم فرصت نمیدهم که گرفتار اندیشیدن به آن ای شوم که پرچم وطنم در میان دو پرچم بالا می رود. اگر بخواهم گرفتار این نوع خیالات شوم از کار و زندگی میافتم و دیگر هرگز آن پرچم بالا نخواهد رفت. بابک پسر تختی بزرگ به من می گوید، تمام نزدیکان پدرم بر این گواهی میدهند که سراسر روزش را با کار و خدمت به دیگران میگذرند، نه مطلقا با خیال بافی و تفاخر تبدیل تجربه به شناخت، تبدیل شناخت به ابزارهای خوب زیستن. دیگر مجزهای به دادمان نخواهد رسید. خوب استراحت کنید، بعد اگر سرحال بودید، یک سر برویم دیدن استاد بیژنی و از آنجا به دیدن قشنگ کامکار و از آنجا به خانه فیروزه و و ممیز بزرگ این یک زندگی ویژه است پدر نه یک زندگی همگانی همه میتوانند زندگیشان زندگیشان را به شکلی ویژه کنند و تمام مسئله این است که ویژگی جزئی از روزمرگی است در کوچکترین روستای وطن هم چوپانی هست که خوبترین را میزند به خانه او برویم و به خانه آن بانویی که زیباترین قالیچه دنیا را میبافد همه خفتند و گیل مرد هنوز بیدار است سکوت مثل نور یک نیروست سخنی است یا صدایی که به علت سرعت حرکت زیاد به سکوت تبدیل شده است مثل چرخ رنگ هایی که در چرخش سریع سفید سفید می‌شوند زیبایی سکوت مثل زیبایی جایی است که سکوت در آن فرود میآید. تمامی آسمان شب. مدتها به سکوت خدشه برداشته نیمه شب گوش می سپارم و سرانجام آهسته برمیخیزم. یک ثانیه را هم نباید از دست داد. برمیخیزم تا باز سکوت را با صدای قلم خطاطاتییم کند کنم. می هیچ چیز همچون اراده به پرواز پریدن را آسان نمی کند تو که آرام و بی صدا به پشت سرم رسیده ای آرام و آهسته می گویی این را صد بار نوشته ای و فروخته ای سی و سه سال است که می نویسی آهسته می گویم اراده نکردیم و نپریدیم می گویی چرا؟ اما هیچ جمله دیگری به ذهنت نمیرسد. میگویم اجازه میدهی چند بیت از آخرین شعری را که برایت گفتم بنویسم میگویی البته البته که دوست دارم و اجازه میدهم. قلم باریکتری دارم و کاغذ بلندتری با تو بودن همیشه پر پرمعناست بی تو روحم گرفته و تنهاست با تو یک کاسه آب یک دریاست بی تو دردم به وسعت صحراست با تو بودن همیشه پر معناست. با تو آسان هزار کار خطیر با تو ممکن جهاد با تقدیر بی تو باغم برهنه همچو کویر با تو یک قنچه دشتی از گلهاست با تو بودن همیشه پرمعناست ای تو تعریف ناپذیرترین بی تو من کوچک و حقیرترین